رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا باد درو در قسمت 23 برنامه برابری در خدمت شما هستیم ما به امید خدا بحث ژنتیک رو تا اینجا به مرحله رسوندیم که به, جا به جایه های جمعیتی که توسط انسانهای اولیه هوموساپیان در حدود 100 هزار سال پیش شروع, شروع شده بود در واقع مهاجرت های اولیه به تحقیقی در واقع در دانشگاه یوتا و لویزیانا رسیدیم که تحقیقی بود که بر اساس ژنتیک و آلل که جن... از ژنتیک انسان گرفته بودند از انسان‌های مختلف در گروه‌های جمعیت دو 52 نژادی که به نام نژاد در واقع میشناسن نشون داده شد که اینها واقعا تو 5 تا گروه قابل تقسیم بندی هستن تازه اون تقسیم بندی هم نسبیه بسیار هم نسبیه بسیار بسیار نسبیه یعنی اون تقسیم بندی گونه‌ها و افرادی که ژنتیکشون با هم دیگه تقریبا مصافی هفتاد درصد با هم در واقع تطابق داره همجد مشترکشون ولی با این حال نجاد هایی که ما الان میشناسیم به عنوان عرب به عنوان انگلو به عنوان وایکینگ اینا, اینا اصلا هیچ دخالتی داخل این نیست هیچ جای نداری که نسبی باشه این 52 و رو دیگه انگام ما دیگه فقط برای خودمون ساختیم برای خودمون ساختیم و یک چیزیه که ما انسان ها ساختیم و متاسفانه برای خیلی ها قبله شده بود حتی از دین هم در واقع مقدس‌تر شده متأسفانه متأسفانه برقای... متاسفان. متاسفان. آخر دقایق قسمت 22 بنده یه طرح بحثی شروع کردم که آیا مفهوم عمومی قوم و نژاد در مقایسه با که انسان همخوانی داره یا نداره تحقیقاتی که الان در واقع داره میاد و با علم جدید مابینی که همخوانی نداره گرچه این در درصد نه نیست اگه صفر نمیتونه چون ما اصلا توی علم صفر, صفر, صفر, صفر, صفر و صد صفر ن... صفر و صد نداری بین صفر 99 تا عدد وجود داره حتی اونایی هم که بحث نژاد مطرح میکنن 100 درصد هم مطرح, در مطرح نمیکردن میگفتن که یک درصدی ولی درصد اکثریت یا آقا ما اصلا برترین به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما این نژاد مثلا این ظواهر رو داره این... این خاصیت ها رو داره این خصوصیات رو داره به این دلیل به این دلیل و به این دلیل ولی هیچ وقت هم مطلق بن به... ندرت پیش می اومد که در واقع این چیزها مطرح بشه ولی اینجا هم ما میتونیم به صورت نسبی و به صورت درصدی ضعیف بگیم که نه هیچ همخانی نداره در برخی موارد بسیار کم همخانی داره ولی در داخل اونها حتی اونهایم که کم کم داره بسیار بسیار زیاده در واقع این تفاوت ها آی دکتر میشه نظر آماری گفت تفاوت های غیر معنی داره غیر معنی داره. ما... با... اصلا معنی دار نیست با... اصلا معنی دار نیست مخصوصا در جوامعی که مهاجرت یا کوچ رسمیت بیشتری پیدا کرده به عنوان مثال رنگ پوست مو و حالتهای صورت صفتهایی هستند که عموما برای جدا کردن بشر و طبقه بندی نژادی استفاده میشه که تأثیر پذیر از انتخاب طبیعی در حالی که بومیان استرالیا و بومیان آفریقا به دلیل انتخاب طبیعی زندگی در مقابل تابش شدید آفتاب هر دو رنگهای رنگدانه های پوستی شبیه به هم دارن اما از نظر ژنتیک جن... کاملا با هم متفاوتن بله بله بله. مثلا اونا هر دو مثلا سیاه پوست هم باشن بله. ولی ژنتیکشون متفاوت. متفاوتن یعنی کسی که مثلا سیاه پوستش نژاد سیاه پوست نداره یه بله. حالتیه که جغرافیایی به خاطر در واقع زیست در مقابل آفتاب و یه چیزی بود که در رنگدانه های پوستی اونها و ژن اونها راه پیدا کرده و مثلا انتخاب طبیعی بوده لزو جنه خاصی نیست که مثلا این می ژن برد... سیاه پوستی اون ژن سیاه پوستی سیاه پوستی ما دوستان وقتی قاونه میکنیم که آقا ژن آری نژاد آر... نداریم نجاد سامی نداریم نجاد اروپایی نداریم نجاد ترک نداریم دیگه, ترک نداریم. دیگه ته تهش که میخوان کوتا میال خب نجاد سفید و سیاه که داریم, داریم؟ که حالا باز بیا توضیح بده که نه بابا وایم با با نداریم نه اینم اینم حتی هیچ مبنایی نداره صفات ظاهری مثل رنگ پوست یا رنگ چشم و قد به دلیل اینی که مورد انتخاب طبیعی قرار گرفتن به طبقه بندی کردن گونه بشر این مسائل به هیچ وجه کمک نمی‌کنه نه تنها کمک نمیکنه تا به حال فجایع بسیار زیانباری هم برای بشر به وجود آورده ولی عنصر های آلو همون آلومنت مشترک هر چقدر کوتاه باشه اشخاص دارای ریشه یکسان هستن نتایج دانشگاه پنسیلوانیا که این هم یه تحقیق جدیدی که همزمان با دانشگاه یوتا و لویزیان انجام میداد نشون میده که بیش از 100 درصد افرادی که خودشان را از نژاد سفید پوست اروپایی میدانند بیش از 90 درصد به غیر سفید پوست اروپایی نزدیکی ژنی دارن اتفاق. میگه که این نشانگر آن است که بیان شخصی در, در بیانها بیان شخصی مثل رنگ سفید پوست بودن فلان چیز رو داشتن فلان ظاهر رو داشتن قد اون حالت رو داشتن در واقع شکل چشم رو داشتن در دست پنده های جنتیکی هر جز در قابل اعتبار نیستن حالا مخ... اگه بخوایم وارد بحث چیز بشیم بحث تاریخی که آره با, با هم وارد با با با با بشیم آره. حالا اگه میخواین شما اون انتقاداتی که درخواسته اونو مطرح بکنین و بحث نصفی رو مطرح کنید تا این بحث رو کاملا دیگه ببندیم و وارد بحث شیرین تاریخ بشیم بله بله بله بل بل خواهش میکنم این ترجمه‌ای که شما فرمودین پس از نوروز روز انجام دادیدین این دیگه خیلی دست اول بود بله یعنی من خواهش می‌کنم بعد این ترجمه رو در اختیار بندم قرار بدین منم تو پازیروشم اینو بگنجونم و این خیلی سند محکمیه ما وقتی از ژنتیک حرف میزنیم ژنتیک یعنی دیگه حرف اول و آخر, آخر. دیگه این زبان نیست درست. این دیگه باستانشناسی و کوزهی سفالی نیست. نیست که اما داشته باشه این هوا و شمردن حلقه درخت ها نیست که بگیم حالا آیا موضوع پنجزار سال پیش بوده یا شیشزار سال پیش ژنتیک از جمله قوانینیه که اتفاقا جزو معدود قوانی نیه که دیگه صفر و یکه دقیقا یعنی یا بندو مثلا حضرت عالی میریم آزمایشگاه خون یا مثلا گروه خونی جنبالی مثبت مثبت هست باله. یا نیست دیگه یعنی دیگه یک جو نداریم که شما هفته بعد گروه خونیت بشه به بی منفی ژنتیک اینطوریه حرف اول و آخر میزنه یعنی وقتی که شما با مثلا یه عده تو این گروه ها توی گروه فلان جنی قرار می دیگه اینا نیای مشترک دارن دیگه آی من نمیدونم فکر می کنم فنلاندیم و تو نمی اینا نداریم دیگه از این حرفا وقتی با این محکمی روی ژنتیک حرف میزنیم خب بله. یک پایه ولی مثلا این مسئله که نیشن استیت و دولت ملت به وجود اومدن خب اینا از تو جغرافیا کاملا اعتباری ان مثلا قرار داده, قرار داده. بله. ولی مثلا اینکه بخوایم بیایم مثلا ف... مثلا انگلیسی بودن یا مثلا آریایی بودن یا ترک بودن رو یک مثلا عرب بودن رو بخوایم یک چیزی مثلا بگیم که نه این بالاتر بله. این برتری بیم مثلا و برتری براش تعریف کنیم نخیر نمیشه بله. اون هویت یک چیزیه که چند تا مؤلفه درش دخیله از جمله ژنتیک و معلفه های دیگه داره زبان داره فرهنگ داره آیین داره سرزمین مشترک داره تاریخ مشترک داره جنگ‌های مشترک داره که حالا ما بعد یکی یکی مباحث ضد نجادی بهش میرسیم که چطوری میشه توضیح داد هویت رو یه پایه محکم ژنتیک مثلا بنده اگه الان ادعا کنم ژاپنی من نمیپذیرین شما دیگه نه دیگه او اصول اولیش جور نیست درست ژاپنی بودن یا نبودن به معنی خوب و بد بودن نیست درست. اصلا بعد ببینیم تو ژاپنی هست یا نیستی بابا اما اولیشو که نداره که اصلا تبار به هیچ شکلی به اونا نمیخوره دیگه و ول کن پس بحث برابر این اون, اون حالا بعد ان شاء الله میرسیم می بهش اون بحث حالا ما اون رو... چون دیگه با هم دیگه تفاهم کردیم که تا پایان 23 و 24 دیگه این بحث داروین رو ببندیم بدیم تو بحث تاریخ من فقط اون بحث که درباره داروین گفتم من عرض کردم اونجا که ما بیشتر به داروینیسم و داروینیست ها داریم. خود آیه داروین توی دوره زندگی کرد حالا یک مطلبی رو رفت پژوهش کرد و جوانی بود و تو هفتاد سالیگه هم زندگی کرد ما رو منتشر کرد و تمام شد رف. یه نقدی که به شخص داروین وارده و این تنها هم نبوده این به کل جهان و عالم قرب وارده اینی که آقای دکتر اوشنگ گنجهی مطلبی دارن که حالا در دنبالش اینو آوردن گفتن که هزاران جلد کتاب ترجمه شده به لاتین در بایگانی کلیسای واتیکان وجود دارد که نام پدید آورنده اثر بر روی آن ذکر نشده است اجا خب کتاب از آسمون افتادن این یه نویسنده داشت دیگه بعد به لاتین ترجمه شده دیگه خب نه از کجا آمده آجا. چون بحث ما در این بالو نیست من فقط دوستانو بازگشت میدم ارجاع میدم به پژوهشای استاد زبی بهروز خدا بیامرزشون ایران کوده های ایشون یک مجموعه مقالاتیه به حساب کتاب شده آمده اینا خیلی کمک میکنه که ما ببینیم علم چطوری از شرق به قرب رفت و نوزایی و رنسانس اروپا چطوری رخ داد برن مطالعه کنن اینا واقعا به درد میخوره توی یه دورهای ببینین مثلا کریستوفکلوم رفت به آمریکا اینا میگن که آقا این اینا گفت بذا من برم ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه اصلا اینطوری نبود من در نشستهای آینده بخشی از پژوهشهای ابوریحان بیرونی رو میارم که با محاسبه چگالی زمین اثبات کرده بوده که اون طرف کره زمین هم باید خشکی‌های وجود داشته باشه بله وگرنه لرزش حرکت وضعی زمین باید متفاوته با امروز می بود یعنی ندیده بوده اما با محاسباتش گفته اون اونور زمین باید خشکی باشه خب این جور به اصطلاح یافته ها اینا همه در شرق بود بعد از سقوط قسطنطنیه اینها در کتابخانه توپکاپی جمع شده بود به دست اونها افتاد بعد جنگ های صلیبی و بعد اون اتفاقایی که به قسطنطنیه افتاد اینا راست به غرب ترجمه شد یه دفعه شما از قرن 15 16 آدمایی که داشتن تو لجند دست و پا می‌زدن می می‌بینین همه‌شون برای ما دانشمن شدن عجیبه ما هست یه جایی که مثلا می‌بودن رسونا آتیش می‌زدن به خاطر یه حرف به خاطر یه حرف آتیش می‌زدن یهویی همه دانشمن شدن آهای دانته دیویی مثلا برداشت کمدی الهی رو نوشت خب وقتی که ما امروز می‌آییم اردای ویرفنامه ایرانی رو که در زمان ساسانی نوشته شده می‌ذاریم این دست کمدی الهی رو می‌ذاریم این دست. آخه خب بابا بی‌انصافی یک دو تا جمله‌اش نباد با هم فرق کنه. می‌دونید دانته با خودش گفت حالا ما کی ترجمه می‌کنیم می‌زنیم ما به نام خودمون و دیگه کی میفهمه نمی‌دونه 100 سال بعد دویست سال بعد میان پیدا میکنن مطابقت میکنن خب سب یک دو تا رو تغییر می‌دادی که دست کم حالا یکی بتونه بگه مال تو بوده. نه نه. خب ورداشتی از روی رو عردو اردای ویرافتنامه ترجمه‌شو حالا چرا به عربی که معراج نام است چه ورش نوشتی؟ انقدر شرف داشته باش بگو بابا یک چیزی دست من رسید من اینو به بهترین شکل به فرانسه ترجمه کردم خب یا آقای فرض کنین دکارت نمیدونم من هستم پس میاندیشم حالا ما این الان وقتش نیست ما توضیح بدیم که من در فارسی چه معنا میده تن چه معنا میده ما به خودمون من در فارسی در زبان ایرانی به معنی اندیشه هست یعنی وقتی ما میگیم من داریم به اندیشه خودمون به اندیشهشو به تنمون اشاره نمی کنیم. یا اون مقددی با شاهنامه آفرینش که چجوری آمده رسیده تا به کیومرس و بعد رو همه رو برداشته زبون خودشون نوشته و گفته اینه همه رو من پیدا کرد میدونین یه مقدار آقای دکتر تو علم باز شرف هم وجود داشته باشه ده. آقای داروین هم به شخص خودش نقدی که وارده اینه که ایشون هم مثل اون بقیه همپالگی خودشون این مقدار شرف در وجودشون نبوده که بگه آقای کتابی به دست من رسید یه چیزایی توش نوشته بود بعد من علاقه من شدم بعد این سفر رو شروع کردم و رفتم دنبارش ادامه, ادامه, ادامه, ادامه دادم مثل خارزمی دیگه کتاب پنجره ارقامش که بعد مثلا اومد و اون حالت رقومی رومی رو تغییر داده اصلا حساب، حسابان حساب جدید و نوین از روی خوارزمی درست شد که خب الگوریتم میدونی که همون چیز از, از استخارزمی گرفت این از معدود جایی که اینا دیگه نام بردن نام بردن پس این ایرادی که به طور کلی وای داروین و اون آدمای اون قرن وارده که اینا نیومدن بگن ما اینا را از کجا یاد گرفتیم یه یهویی همه ستاره شناس شدن همه کپرنیک شدن همه کپلر شدن درصدی که کتابای فارسیش هست خود این کتاب فارسی هست. از بین رفته اصن کتابه فارسیش هست بله، که شما اینا به دست بله. حالا من میگم نوشته های بهروز رو بخونن دوستان متوجه میشه این ایرادی که پس ما باهید داروین میگیریم ایرادی که ما به داروینیسم ها میگیریم و به داروینیسم میگیریم اینه که اومدن اینو یکم یک کج و کوله کردن بله. جناب ایلان مهر عزیز خب حالا ایرادی که به ها وارد هستش رو به نظرم اینجا نگه داریم چون وقت برنامه رو بله، به هستش قسمت 23 همه به پایان میرسه تا آغاز قصد 24 هم شما رو به خداونده متعال میسرم خدای یارو نگهتار شما شمدگان ازیز باشم